برگ و چند داستان دیگر اثر گابریل گارسیا مارکز ترجمه هرمز عبداللهی با صدای علی دنیاوی ساروی تهیه کننده دامون آزری کاریاز گروه فرهنگی آوانامه با همکاری نشر چشمه ستون اول طوفان برق فصل اول بار است که جنازه میبینم امروز چهارشنبه است اما احساس میکنم که انگار یک شنبه است زیرا امروز مدرسه نرفتم و لباس مخمل سبز راه راه تنم کردند که در بعضی جاها تنگ است دست در دست مامان پشت سر پدر بزرگم که در هر قدم با اصایی راه خود را کورمال پیدا می کند که مبادا به چیزی بخورد. توی تاریکی خوب نمی بیند و گذشته از آن میلنگد از از آینه ای که در اتاق نشیمن است میگذرم و خودم را با آن لباس سبز و پیراهن یق آهاری که در یک طرف گردنم تنگی می کند سراپا ورانداز میکنم. خودم را در آینه گرد موجدار تماشا می کنم و می اندیشم این منم همانطور که امروز یکشنبه است به خانهی که مرده در آن است آمده ایم توی اتاق در بسته از شدت گرما نفست می گیرد می توانی هم همه آفتاب را در خیابان خیابانها بشنوی اما فقط همین هوا مثل سنگ را است، و این احساس با آدم دست میدهد که می هوا را همچون برقه ای فولادی به هم پیچید توی اتاقی که جسد را دراز کردند بوی خرت و پرت میآید. اما من هیچ جا خرت و پرتی نمی بینم. در گوشه اتاق ننویی هست که یک سرش به حلقه ای آویزان است. بوی آشغال و پسمانده اتاق را پر کرده و من فکر می کنم که همه چیز دور بر ما خرد شده و از هم پاشیده و منظره چیزهایی را به خود گرفته که حتی اگر بوی دیگری هم داشته باشند باید بوی آشغال بدهند همیشه فکر می که مرده باید کلاه به سر داشته باشند اما حالا می بینم که چون این نیست میبینم که کلهی مثل موم دارند و دست مالی محکم دور چانشان بسته شده دهانشان کمی باز است و از پشت لب‌های کبود می توانم دندان‌های جرم گرفته و نامرتبشان را ببینم زبان گاز گرفتهشان را می بینم که به یک سو آویزان شده و کلوفت و چسبناک است و از رنگ چهرهشان تیره تر می نماید مثل رنگ انگشتانی که از را سفت و سخت چسبیده باشند می توانم چشمان وحشی و نگرانشان را که باز و گشوده از چشم آدم زنده است و پوست تنشان را که گویی از جنس خاک سفت و نمناک است ببینم فکر می کردم که مرد با آدمی خاموش و خفته می ماند. اما حالا درست خلاف آن را می بینم شبیه کسی است که سراسیمه از خواب پریده و گرفتار خشم پس از دعواست. ماما نیز چونان لباس پوشیده که انگار یک شنبه است همان کلاه حسیری قدیمیش را به سر دارد که تا روی گوشهایش پایین میآید و لباس مشکی یق وسته به تن کرده که آستینهایش مچ دستش را میپوشاند. اما چون امروز چهارشنبه است با این لباسها به نظرم وجودی دور و بیگانه می نماید. و وقتی پدر بزرگم برای استقبال مردانی که تابوت را وردند از جا بلند می شود، احساس می کنم که مامان می‌خواهد چیزی به من بگوید او که پشت به در بسته در کنار من نشسته است، به سختی نفس می‌کشد و مرتب موهایش را که از کلاه بیرون آمده توی کلاه فرو می کند. معلوم است که کلاهش را با عجله به سر گذاشته پدر بزرگ به مردها گفته که تابوت را کنار تخت خواب بگذارند تنها همون وقت بود که فهمیدم تابوت کاملا غالب مرد بوده است هنگامی که مردها جعبه را وردند خیال می‌کردم که برای اندامی چنان بزرگ که سر تا سر تخت خواب را گرفته است باید خیلی کوچک باشد نمیدانم چرا مرا همراه خودشان آوردند تا آن وقت هرگز پایم به این خانه نرسیده بود و حتی فکر می‌کردم که کسی اینجا زندگی نمی کند خانه ی نبشی درندشتی است که فکر میکنم درش هرگز باز نشده است همیشه خیال میکردم که کسی در این خانه زندگی نمی کند تازه حالا پس از آنکه مادرم به من گفت که تو امروز بعد از ظهر مدرسه نمی‌روی و من احساس شادی نکردم چون لحن مادر در و رسمی بود و پس از آن که دیدم با لباس مخمل راه راه هم برگشت و بی آنکه کلمه ای بر زبان آورد آن را تنم کرد و دم در به پدر بزرگ ملحق شدیم و پس از گذشتن از سه که بین خانه ما و این یکی فاصله انداخته است به اینجا رسیدیم آری تازه حالاست که میفهمم. در این خانه کسی زندگی می کرده. کسی که مرده بود می باید همان مردی باشد که مادرم در حرف می زد و می گفت تو باید در تشییع جنازه دکتر موازب رفتارت باشی وقتی وارد خانه شدیم مرده را ندیدم پدر را دیدم که با مردها گرم گفتگو بود و پس از آن دیدم که به ما می گوید وارد خانه بشویم آن وقت فکر کردم که کسی در اتاق است اما وقتی داخل شدم خود را با اتاقی تاریک و خالی رو دیدم. گرما از همان دقیقه اول به صورتم میگوپید و آن بوی آشغال و پسماند اکنون و از همان اول مثل گرما ثابت و ماندگار مینمود با موجهای آرام پیش می‌آمد و ناپدید می شد. دست در دست مامان از اتاق تاریک گذشتیم و او مرا در گوشهای کنار خود نشاند مدتی گذشت تا توانستم چیزهای دورو برم را تشخیص دهم پدر بزرگ را دیدم که سعی دارد پنجره‌ای را که انگار به چهارچوبش چوبش چسبیده بود باز کند میدیدم که ازایش را بر ها افتها می‌کوبد کتش از گرد و قباری که با هر ضربه عصایش بلند میشد غرق خاک شده بود سرم را به سویی برگرداندم که پدر بزرگ کورمال و اصازنان میرفت و میگفت که نمیتواند پنجره را باز کند و تازه آن وقت بود که کسی را روی تخت خواب دیدم مردی با رنگ تیره و دست و پای گشوده و بی حرکت سپس سرم را به طرف مادرم چرخاندم که با حالتی جدی و بی هیچ حرکتی به جای دیگری در اتاق خیره شده بود چون پاهایم به زمین نمی رسید و در هوا آویزان بود و یکی دو وجب با کف اتاق فاصله داشت دستها را زیر رانهایم گذاشتم و کف دو دست را به صندلی فشردم و بی آنکه به چیزی فکر کنم پاهایم را تاب دادم آن وقت حرف مامان به یادم آمد که تو باید در تشییع جنازه دکتر مواظب رفتارت باشی. آن وقت سرمایی در پشتم احساس کردم. پشت سرم را نگریستم اما جز دیواری چوبی و ناهموار چیزی ندیدم. ولی انگار کسی از توی دیوار به من گفت: "پایت را تکان نده." مردی که روی تخت خواب دراز کشیده دکتر است، کارا مرده. و وقتی که به طرف تخت خواب نگریستم دیگر به شکلی که پیش از این دیده بودمش نبود دراز نکشیده بود مرده بود از آن پس هرچی میخواهم نگاه نکنم احساس میکنم که انگار کسی سرم را به زور به همان طرف میچرخاند و حتی وقتی سعی میکنم که به جای دیگری از اتاق نگاه کنم باز هم همه جا او را با چشمانی از حدق برآمده. و چهرهی مرده و کبود در سایه روشن میبینم نمیدانم چرا کسی برای احیاب و ماتم شبانه نیامده است فقط ما آمده ایم، پدر بزرگم مامان و آن چهار سرخ پوست گواخی که برای پدر بزرگ کار میکند مردها یک کیسه آهک آوردند و در تابوت ریختند اگر مادرم این همه دور و بیگانه نمی نمود ازش می پرسیدم چرا این کار را کردند نمی فهمم که چرا باید توی تابوت تا آهک بریزند وقتی کیسه خالی شد یکی از مردهان را روی جعبه تکند و آخرین ذراتش را نیز که بیشتر به خاکر شبیه بود تا آهک بیرون ریخت شانهها و پاهای مرده را گرفتند و بلندش کردند به کمر شلوار ارزان قیمتش بندی پهن و سیاه بسته است و پیراهنی خاکستری بدن دارد، فقط به پای چپش کفش دارد. همانطور که آدامی گوید او یک پاپادشاه و یک پا گده است. کفش پای راستش دم تختخواب افتاده است. توی رخت خواب معذب می اما در تابوت بسیار راحت و آرام جلوه میکند. و چهرش که به چهره مردی شبیه بود که از پس جدالی سخت زنده و بیدار مانده باشد حالتی آرام و سرشار از اطمینان به خود گرفته است نیم روخش است انگار حس می که حالا توی جعبه جای واقعیش را عنوان یک مرده به دست آورده است پدر بزرگ دور و اتاق راه افتاده است چیزهایی را که برداشته توی تابوت میگذارد دوباره به مامان نگاه می کنم. به این امید که به من بگوید چرا پدر این چیزها را توی تابوت می اندازد. اما مادرم با آن مشکیش تکان نمیخورد و مثل این است که سعی دارد چشمش به جایی که مرد را گذاشتند نیفتد. من هم سعی می کنم کار را بکنم، اما نمیتوانم به پدر خیره می شدم. براندازش میکنم پدربزرگ کتابی توی تابوت میاندازد و به مردها علامت میدهد سه نفر از آنها سرپوش تابوت را روی جنازه میگذارند تا آن وقت است که احساس میکنم از چنگ دستهایی که سرم را به آن طرف نگاه داشته بودند رها شدم و سر تا سر اتاق را برانداز میکنم باز به مادرم نگاه می کنم از لحظه ای که به آن خانه آمدیم نخستین نخست این بار است که به من نگاه می کند و لبخندی زورکی تحویلم می که معنایی ندارد و من می توانم از دور صدای سوت قطار را که در خم آخرین پیچ ناپدید می شود بشنوم. از گوشه ای که جنازه را گذاشتند صدایی می شنوم. می بینم که یکی از مردها یک طرف سرپوش را بلند می کند و پدر بزرگ کفش مرده را همان کفشی که روی تخت خواب جا گذاشته بودند توی تابوت میگذارد. باز قطار در فاصله ای دور در سوت می کشد و ناگهان به فکر میافتم ساعت دو سی دقیقه است یادم میآید آید که همین حالاست که قطار که در آخرین پیچ شهر سوت می کشد در مدرسه بچه ها برای رفتن به اولیم کلاس بعد از ظهر صف ببندند به ابراهام فکر می کنم. بهتر بود بچه را با خودم نمیآوردم همچون منظره ای برایش مناسب نیست حتی برای من هم که به سی سالگی نزدیکم هوای این اتاق که حضور جنازه خفش کرده است ناگوار است میتوانیم همین حالا از اینجا برویم می توانیم به بابا بگوییم ما در این اتاق احساس آرامش نمی کنیم. در این اتاق هفده سال ما ترک مردی که از هرچه نشان محبت و امتنان است بریده روی هم انبار شده است. شاید پدرم تنها کسی باشد که احساس و آتفهی به نشان داده. احساس و آتفهی که نمی شود توصیفش کرد. ولی دست کم اکنون نیز ما از آن می شود. که در این چهار دیواری بپوسد از این همه حماقت و مسخرگی حفظ می خورم فکر این که باید چند لحظه دیگر توی خیابان دنبال تابوتی راه بیفتیم که هیچ حالتی جز شادی و خوشحالی به دیگران نمیداد حالم را به هم می زند می توانم حالت چهره زنها را در نظر آورم که از پشت پنجره گذشتن پدرم را تماشا می کند. مرا تماشا میکنند که با بچه پشت سر تابوت مجللی راه افتادم که تویش تنها مردی که مردم شهر آرزوی پوسیدنش را داشتند در اوج ازلت سرکشانش روانه قبرستان است و فقط سه نفر تصمیم گرفتند دنبالش راه بیفتند و کار سوابی را که آغاز انتقام او بوده است انجام دهند. شاید این تصمیم بابا باعث شود که فردایی چکس حاضر نباشد در مراسم تشییع جنازه ما حتی یک قدم بردارد شاید به همین دلیل بچه را با خودم آوردم وقتی بابا یک لحظه پیش گفت تو باید با من بیایی نخستین چیزی که به ذهنم رسید آوردن بچه بود تا احساس دلگرمی و امنیت بکنم اینک ما اینجا در این بعد از ظهر خفه و دم ماه سپتامبر در این اتاق هستیم و احساس میکنیم کنیم که چیزهای دورو برمان معمور بیرحم دشقیمان ما هستند بابا دلیلی ندارد نگران باشد عملا همه زندگیش را صرف همین کارها کرده همیشه گذک به دست مردم شهر داده حتی برای وفا کردن به ناچیزترین قولهایش هر گونه رسم و سنتی را زیر پا گذاشته از همون بیست و پنج سال پیش که این مرد پا به خانه ما گذاشت وقتی که متوجه شد که مهمانش چه رفتار نامعقول و احمقانه ای دارد باید فکرش را می کردم که امروز در تمام شهر یک نفر هم بیدانه می شود که حتی حاضر باشد جسد او را جلوی لاشخورها بیندازد شاید بابا تمام این موانع را پیشبینی می کرد و احتمال این گرفتاری ها را پیش خود حساب کرده بود اینک پس از 25 و پنج سال حتما احساس می که این همان وظیفه شاق معهودی است که مدتها به فکرش بود و باید به هر تقدیر انجامش دهد باید جنازه را از خیابانهای ماکندو به تنهایی بردوش بکشد با این همه وقتش که شد به تنهایی جرأت چون این کاری را نداشت و مرا وادار کرد در این وعده شاق که حتما مدتها پیش از اینکه دلیلش را به فهمم بان تنداده بود شرکت کنم وقتی که گفت باید همراه هم بیایی اصلا مهلت نداد که عمق مسئله را بسنجم نمی توانستم اصاب کنم در دفن این مرد که همه آرزو میکردند در لانش خبار شود چنداز شرم شرمساری و هماغت نفته است مردم که مطلقا انتظار این واقعه را نداشتند خود را آماده کرده بودند تا همه چیز چنان که می‌خواستند و به هیچ تصفی از دل آرزو میکردند اتفاق بیفتد. و تا با رضایتی قابل پیشبینی روزی را انتظار می‌کشیدند که بوی دلپذیر تجزیه جسدش شهر را آکنده کند و به آن که احساسی در کسی برانگیزد. یا کسی را نگران و منزجر کند باعث شود که با رضایت از فرارسیدن ساعت محود از ته دل بخواهند که این آن آنقدر ادامه یابد تا این بوی پراکنده حتی پنهانترین خشمها و رنجهایشان را ارضا کند اینک ما میخواییم ماکوندو را از آرزوی دیرینه شادمانیش محروم کنیم اما حس می کنم انگار احساس مالی مالیخولیایی که این تصمیم ما در دل مردم برانگیخته از سرخوردگی نیست از تأخیر است این هم یک دلیل دیگر که چرا بهتر بود بچه را خانه میگذاشتیم تا پای او را به این توتعی که دکتر ده سال با آن درگیر بود و حالا متوجه ما می شود نکشم باید بچه را از این ماجرا دور نگاه می داشتم او حتی نمی داند که چرا اینجا آمده و چرا او را به این اتاق پر از آشغال آورده ایم. چیزی هم نمیگوید نشسته و پاهایش را تاپ می‌دهد. دستهایش را روی صندلی گذاشته و منتظر است که کسی این معمای هولنگیز را برایش حل کند دلم میخواهد مطمئن شوم که کسی چون این خیالی ندارد و کسی این در نامر ای را که نمیگذارد او از قلم رو بفهمش فراتر رود به روی او نخواهد کشو چندین بار به من نگاه کرده است و می دانم که در نظرش غریبم. شکل کسی شدم که او نمی شناسد. با این لباس آهار زده و این کلاه قدیمی که به سر دارم حتی برای خودم هم قابل شناسایی نیستم. اگر ممه زنده بود و اینجا در این خانه پیش ما بود شاید خزی فرق می کرد. ممکن بود فکر کنند من به خاطر او اینجا آمدم. شاید فکر میکردند آمدم در اندوهی سهیم شوم که ممه احتمالا احساس نمیکرد اما میتوان تظاهر کند و برای مردم شهر قابل درک بود ممه حدود یازده سال پیش ناپدید شد مرگ دکتر هرگونه گونه امکان پیدا کردن ردپای او یا حتی دستکم یافتن استخانه هایش را منتفی کرده ممه اینجا نیست؟ اما اگر همین جا بود و اگر آنچه اتفاق افتاد و هرگز روشن نشد پیش نیامده بود چه وسا او هم علیه مردی که شش سال آزگار با عشق و انسانیتی که تنها از طاقت قاطرها ساخته است بستر او را گرم کرده بود جانب مردم شهر را می گرفت صدای سوت قطار را در خم آخرین پیچ می شنفم. فکر میکنم ساعت دو سی دقیقه است. نمیتوانم خود را از این فکر رها کنم که در این لحظه تمام مکند و حیران است که ما در این خانه چه میکنیم؟ به سینیور ربکا میاندیشم که ظریف است و شکننده می با حالت شبه خانوادگی در ریخت و لباسش کنار پنکه نشسته و پرده پنجره ها را سایه انداخته. سینیور وقتی که صدای دور شدن قطار را در خم آخرین پیچ میشنود سرش را به طرف پنکه خم می کند. گرما و خشم کلافش کرده است. پرههای قلبش مثل پرههای پنکه اما در جهتی مخالف میچرخند و او با خود زمزمه می کندند همه اینها کار شیطان است و از اینکه با ریشه های ظریف مسائل روزمره به زندگی پیوند خورده. خود میلرسد آگیدای شللسلی را میبیند که از بدرقه دوست به سرش در ایستگاه راه آهن برمیگردد. میبیند که گام پیچیدن از آن خیابان خلوت چتر آفتابیش را باز می کند. صدای نزدیک شدن قدمهایش را میشنود که سرشار از شوری جنسی است که زمانی او نیز از آن لبریز بود اما اینک در او جای خود را به شکی مذهبی و بیمارگونه ای داده که او را وامی دارد تا بگوید سرانجام در بستر خود چون خوکی که در خوکدانی بلولد قلد خواهی زد نمیتوانم خود را از این فکر خلاص کنم نمیتوانم این فکر را از سر بیرون کنم که ساعت دو سی دقیقه است و قاطر با ان کیسه پستی در میان ابری از گرد و غبار سوزان پیش می رود و به دنبالش مردهایی هستند که از خواب نیم روز دست کشیدند تا بستهای روزنامه را بردارند. تی آنخل در, در, آن در صندو خانه نشسته کتاب دعایی روی شکم پیه گرفتش باز است. چرت می زند و به صدای پای قاطر که رد می شود گوش میدهد و می کوشد مگسها را. که مزاهم خوابش هستند براند آرق میزند و میگوید، این کوفتهایت مرا مسموم کرده بابا نسبت به همه اینها خون سرد است حتی وقتی که به مردها گفت تابوت را باز کنند تالنگ کفشی را که در رخت خواب جامانده بود توی تابوت بگذارند تنها او توانسته بود به خستت و فرومای گیان مرد علاقمند شود اگر وقتی با جنازه بیرون می رویم، مردم را ببینیم که شبانه هرقدر توانستند گند اشغال جمع کردند و چشم به راه ما هستند تا به خاطر اینکه بر خلاف رفتار کرده این بر سر ما بریزند تعجب نمیکنند. شاید به خاطر بابا این کار را نکنند. شاید هم دست به این کار بزنند، چون برایشان بسیار حولناک است که از لذتی محروم شوند. که این همه سال در آرزویش بودند و همه از زن و مرد در تمام آن بعد از ظهرهای خفف و دم کرده هر وقت که از جلو این خانه میگذشتند و با خود میگفتند دیر یا زود با آن بوش کمی از عذا در میآوریم به آن فکر می میکردند این چیزی بود که همهشان از اول تا آخر به زبان میآوردند به زودی ساعت سه می شود. اکنون دیگر سینیوریتا این موضوع را میداند. داند. سینیورا ربکا او را دید که رد می شود و صدایش کرد. سینیورا ربکا از پشت پرده دیده نمی شد. برای لحظه ای از مسیر پنکه دور شد و به سینیوریتا گفت. سینیوریتا میدانی کار شیطان است. فردا دیگر این بچه من نیست که به مدرسه می رود. بلکه کس دیگری است بچه است کاملا متفاوت بچه است که بزرگ خواهد شد تولید مصر خواهد کرد و سرانجام خواهد مرد بیان که کسی حاضر شود دین و وظیفهش را نسبت به او ادا کند تا کفن و دفن مسیحی داشته باشد اگر بیست و پنج سال پیش این مرد با یک توصیه نامه به خانه پدرم نیامده بود هیچکس کس نفهمید که از کجا آمد اگر پیش ما نمانده بود تا علف خاری کند و با آن چشمهای از حدق درآمده مثل سگ شهوت زده بزن هازل بزند شاید اکنون آسود و آرام در خانه نشسته بودم اما مکافات من که از پیش از تولدم رقم خورده بود پنهان و دور از نظر در خانه ما جا خوش کرد تا این سال کبیسه شوم که من سی ساله می از راه برزد و پدرم بگوید باید همراه هم بیایی وان وقت پیش از آن که من فرصت پرسیدن چیزی را داشته باشم با اصایش به کف اتاق بکوبد و بگوید دخترم باید این را همانطور که هست قبول کنیم امروز صبح دکتر خودش را دار زده